هستی انسان باید نوعی اشتباه باشه سخت بیم ناکم که روزی مرا مقدس فقط... به سروت نام سروتی هست انسان است سروت دارم آرزوی رنجوری بد رفتاری و آزار دیگیم رفتاری جز این نخواهم کرد ولو بارها کشتشان اگر فکر کنیم که قسمتی از جهان معاف و امن است در اشتباهی که لزومی دارد برای اجزای زندگی گریه کنیم کل زندگی تسلی بخشی های فلسفه از آلن دوباتن ترجمه عرفان ثابتی با صدای آرمان سلطانزاده تهیه کننده دامون آزری کاری گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات ققنوس اصل اول بخشی در مواجهه با عدم محبوبیت بخش اول چند سال قبل در یکی از زمستان های بسیار سرد نیویورک پیش از پرواز به لندن بعد از ظهری را آزاد بودم و به ای خلوت در طبقه بالای موزه هنر متروپولیتن رفتم نور اندکی در آنجا میتابید و غیر از صدای دلنواز سیستم حرارتی طبقه پایین صدایی شنیده نمیشد. دل زده از نقاشی های, های امپرسیونیستی به دنبال نشانهای از یک کافتریا بودم امیدوار بودم در آنجا یک فنجان از شیر شکلات آمریکایی خاصی بخرم که در آن لحظه به شدت به آن میل داشتم که یک بوم نقاشی توجه مرا به خود جلب کرد مطابق شرح زیر بوم این نقاشی را جاکلوی داوید 38 ساله در پاییز 1786 در پاریس کشیده بود سقرات که مردم آتن به مرگ محکومش کردند آماده می شود تا جام شوکران را بنوشد و دوستان اندوهگینش او را در بر گرفتند در بهار سال 399 قبل از میلاد سه شهروند آتنی علیه این فیلسوف اقامه دعوا کردند و او را به عدم پرستش خدایان شهر، ترویج بدعتهای مذهبی و فاسد کردن مردان جوان آتنی متهم کردند و به دلیل سنگینی این اتهامات خواستار مجازات مرگ برای او شدند. سقرات با متانتی افسانهای به اتهامات پاسخ داد. گرچه فرصت داشت تا در دادگاه از فلسفهاش برائت جوید ولی از آنچه به نظرش درست بود و نه از آنچه میدانست مورد پسنده همگان است دفاع کرد مطابق روایت افلاطون او با شهامت به حیعت منصفه گفت تا جان در بدن دارم از جستجوی دانش و آگاه ساختن شما به آنچه باید بدانید دست بر نخواهم داشت پس آتنیها بدانید که خواه سخن آنوتوس را بپذیرید خواه مرا تبرعه کنید در هیچ حال رفتاری جز این نخواهم کرد ولو بارها کشته شوم. و این چنین بود که به فرجام خود در زندانی در آتن رهنمون شد مرگ او لحظه سرنوشت ساز در تاریخ فلسفه را رقم زد یکی از نشانه های اهمیت این رویداد را میتوان این امر دانست که این واقعه را بارها به تصویر کشیدند. در سال 1650، شال آلفونس دو نقاش فرانسوی، مرگ سقرات را به تصویر کشید. این تابلو اکنون در گالریا پالاتینا در فلورانس که هیچ کافتریایی ندارد، در معرض تماشا قرار دارد. قرن هجدهم دوران اوج علاقه به مرگ سقرات بود. به ویژه پس از اینکه دیده رو در قسمتی از رسالهای در باب شعر دراماتیک توجه همگان را به ظرفیت به تصویر کشیده شدن این واقعه جلب کرد. در بهار 1786 ژاک لویی داوید از شارل میشل اهل سابلیه نماینده ثروتمند مجلس و پژوهشگر برجسته امور یونان سفارشی دریافت کرد. شرایط قرارداد سخاوتمندانه بود. شش هزار لیور پیش پرداخت و سه هزار لیور دیگر در هنگام تحویل کار لوی شانزده در ازای تابلوی بزرگتر سوگند هراشیو فقط شش هزار لیور پرداخته بود وقتی این اثر در نمایشگاه سال 1787 به نمایش گذاشته شد بیدرنگ آن را درخشان ترین اثر درباره فرجام سقرات شمردند سر جوشوا رینولدز این اثر را چانین سدود استادان ترین و تحسین برانگیزترین ترین کوشش هنری که از زمان نمازخانه سیستین و استانزه یا اتاقها اثر رافائل ظهور کرده است. این تصویر ادای احترامی به آتن اثر پریکلس است. من در گرفه اجناس کادوی موزه پنج کارت پستال از آثار داوید را خریدم و بعدن در هنگام پرواز بر فراز زمین های یخبسته نیوفانلند که قرص کامل ما و آسمان بدون ابر آن را سبز درخشان کرده بود؟ یکی از آنها را وارسی کردم. در حالی که با بی میلی به شامی نک که مهماندار هواپیما در هنگام چرت نابه هنگام روی میز جلویم گذاشته بود. در این تصویر افلاتون پای تخت نشسته. قلم و کاغذی در کنار دارد. شاهدی خاموش بر بی ادالتی حکومت. او در زمان مرگ سقرات بیست ساله بوده. ولی داوید وی را به پیرمردی جدی با موهایی جوگندمی تبدیل کرده است. در داخل دهلیز، زندانبانان بانان، همسر سقرات را از سلول زندان همراهی می کنند. هفت دوست، در حالتهای متفاوتی از زاری و ماتم هستند. نزدیکترین مصاحب سقرات، کریتون، کنار او نشسته، و با دلبستگی و نگرانی به استاد خیره شده است. ولی سقرات راست قامت، با اندام و ورزشکاران هیچ نشانی از نگرانی و ندامت ندارد این واقعیت که بسیاری از آتنی ها سقرات را نادان دانسته و از او دوری جستند او را در اعتقاداتش متزلزل نکرده است داوید میخواست سقرات را در حال نوشیدن زهر به تصویر کشد ولی آن رشانیه شاعر به او گفته این اثر تنش دراماتیکی بیشتری خواهد داشت اگر سقرات را در حال به پایان بردن مطلبی فلسفی نشان دهد در حالی که در همان لحظه دستش را با آرامش خیال به طرف شوکرانی دراز می‌کند که به زندگیش خاتمه می‌یابد که چون این تصویری هم اطاعت سقرات از قوانین آتن و هم پایبندی او را به رسالتش نشان می‌دهد ما شاهد آخرین لحظات آموزنده زندگی موجودی متعالی هستیم شاید به این سبب به شدت تحت تأثیر این کارت پستال قرار گرفتم که رفتار ترسیم شده در آن تضاد بسیار زیادی با رفتار من داشت. در گفتگوها من ترجیح میدادم مورد قبول و علاقه طرف مقابل باشم نه اینکه حقیقت را بگویم. میل به جلب رضایت سبب شده بود که به لطیفه های پیش پا افتاده بخندم، درست مثل پدری در شب افتتاحیه نمایشنامه مدرسه ای. رفتار من با غریبه ها شبیه رفتار نوکر دربانی بود. که به مهمانان ثروتمند هتل خوشامد میگوید اشتیاق کفالود ناشی از میل کورکورانه بیمارگونه به جلب محبت من نسبت به آرا و عقاید اکثریت مردم به طور علنی ابراز شک و تردید نمیکردم من در پی جلب تایید و موافقت صاحبان قدرت بودم و تا مدت ها پس از ملاقات با آنها نگران این بودم که آیا مرا خوشایند یافتند یا نه در هنگام عبور از گمرک یا رانندگی در کنار ماشین پلیس، آرزوی مبهمی در دل داشتم که ای کاش مأموران اونیفرن پوش نظر خوبی راجع به من داشته باشند. ولی سقرات در برابر عدم محبوبیت و محکوم شدن از طرف حکومت متزلزل نشد. او به سبب گله و شکایت دیگران از افکار خود دست بر نداشت. علاوه بر این اعتماد به نفس او ناشی از امری جرفتر از تندخویی و شجاعت احمقانه بود. این اعتماد به نفس ریشه در فلسفه داشت. فلسفه به سقرات اقایدی داده بود که میتوانست در هنگام رویارویی با مخالفت دیگران به این باورها اعتمادی اقلانی و نه عصبی داشته باشد. آن شب بر فراز سرزمین های یخی، چنین استقلال فکری نوعی مکاشفه و الهام بود. این امر نوید بخش اصلاح تمایل ناشی از سوستانسوری به پیروی از رویه ها و آرای مورد تایید جامعه بود. زندگی و مرگ سقرات دعوتی به شکاکیت هوشمندانه است. مسئله کلی اینکه که به نظر می رسید موضوعی که فیلسوف یونانی مسئله اعلای آن به شمار می رفت دعوت به قبول مسئولیتی همزمان جرف و خنده دار است. حکیم و خردمند شدن از طریق فلسفه. به رغم تفاوت‌های زیاد میان بسیاری از متفکرانی که در گذر زمان فیلسوف خوانده شدند، افرادی در حقیقت چنان متفاوت که اگر در مهمانی بزرگی دور هم جمع شوند، نه تنها چیزی ندارند که به یکدیگر بگویند، بلکه به احتمال زیاد پس از نوشیدن چند جام کارشان به دعوا می‌کشد. این امر ممکن به نظر می رسد که به توانیم گروه کوچکی از انسانها را از دیگران متمایز کنیم انسانهایی با قرنها فاصله از یک دیگر انسانهایی که تا حدودی متعهد به دیدگاهی در فلسفه بودند که از ریش شناسی یونانی این کلمه فیلو به معنای عشق سوفیا به معنای حکمت برمیخواست گروهی که وچه اشتراکشان علاقه مشترکی بود که به بیان برخی مطالب تسلی بخش. و عملی درباره علل بزرگترین قمع‌های ما داشتند من به چنین کسانی رویاوردم